اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان البعیین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلاة والسلام علی نبینا و آله تاهریم خدمت عزیزان دانشجو خودم عرض سلام دارم روز بخیر خیر عرض میکنیم ان که اطاعت و عبادات شما مقبول درگاه خداوند باشد و ان که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و به لطف الهی از هر گونه گزند و بلایی هم به دور باشید باز هم پوزش به خاطر اینکه ساعت کلاس شما را به این ساعت تغییر دادم ولی متاسفانه کورونا دست بردار نیست باز جلسه امروز ما رو هم ملغا کردند و به دلیل شرایط بد قزم دیگه دانشگاه این مطلب رو داشتند که نقف کردند من فکر می‌کنم که شما اگر یه لطفی به من بکنید حداقل اقل تا آخر ماه مبارک رو همین ساعت بیایید که ما سیستممون رو به هم نزنیم یه لطف خوبی کردید و ما هم دعاگوی شما انشالله خواهیم بود و پوزش هم می طلبیم. پس انشالله دیگه این کار رو بکنیم که اگر ما جلسه بود و که من بتونم برم هر موقع بود اگر نتونستیم هم که خب این ساعت ما در فدمت شما باشیم باز هم با عذر تکثیر انشالله شرایط به گونهی بشه آره یعنی تا موقعی که حداقل تا چیز باشه این ساعت باشه بعد من اینشاالله شرایطی جوری بشه که ما دلمونم تنگ شده خلاصه شرایط حقیقی بشه کلاس باشه در خدمت باشیم و بتونیم خدمت بیشتری به باکن دام کنیم انشالله تو این ایام صحت و سلامتی باشه و این شرایط هم اینشاالله به لطفه خداوند تعالا بر برطرف بشه و شرایط خوبی که شرایط حضور باشه انشالله شاء خوب خب ما در قصیده دوممون سه بیت آخرش مونده بود که من این سه بیت رو براتون میخونم بعد قصیده سوم رو شروع میکنم قصیده سوم رو خدمتتون شروع میکنم ایشون داشتش مد میکرد سیف و رو توی بیت سی و اینطور میگه میگه ترک تو سرا خلفی لمن قل ماله و انعل تو و انعل تو افراسی به نوع ما که عرص جدا از سرا قبلا گفتیم دیگه یعنی شب پیمایی سرا یسری فعلشه از سرا مسترشه چون اینها شب حرکت میکردن کردن به جاده چون روز گرم بوده و غیره آه. مسافرت منظورش مسافرت در شب دیگه شب پیمایی و مسافرت در شب و رسیدن به محبوب و مده او جایزه گرفتن و من ترکت و سرا اینها رو کنار گذاشتم خلفی پشت سرم اینها رو پشت سر گذاشتم یعنی من انقدر تو به هم عطا کردی و دادی دیگه به این که بخوام بکوبم و حرکت کنم و به جای برسم و مد کنم و بخوام چیزی به دست بیارم دیگه نه همه چی دارم ترکت خلفی خلفی متعلق و پشت سرم لمن برای کی گذاشتم برای کسانی که لمن قل ماله مالش کمه برای افراد دیگه اونا بیان بکوبن بیان تو رو ببینن مدهد کنن چیزی گیرشون بیان آه دیگه دویدن و رسیدن به مال رو من پشت سر گذاشتم برای کسانی که دستشون لمن قل مالهو لمن متعلقه به ترکتوست قل مالهو سله منه پس اینو گذاشتم برای کسایی که مالشون کمی من اینقدر دارم دیگه نیاز به دویدن ندارم و انعل تو افراسی افراس هم میگه جمع فرست انعل تو یعنی نعل زدم و من نعل زدم اسبان خودم رو نمیگه اسب خودم رو یعنی. انگار یکی بگه من ماشین های خودم رو انعال تا افراسی مفعول اول انعال توست اسجدن مفعول دوبه میشه اسجد یعنی زهب تلا من اسبان خودم رو نل کردم به تلا یه انقدر تلا دارم نل اسب زدم یعنی داره نهایت به قول خودمون اون ثروتمندی میگه میگه انقدر من دیگه طلا دارم انقدر ثروتمندم دیگه چیزی نمونده بوده اصلاً من تلا کردم و انعل التو افراسی نعماک نعما یعنی عطا به واسطه به سبب عطای تو من همه از های خودم رو چکار کردم نعل کردم با طلا این کنایه از اینه که دیگه انقدر دارم آه دیگه چکار کنم عصف خودم رو نعل کردم با طلا به واسطه نعمات تو نعمات تو اینقدر زیاده که من به واسطه اونها عصفان خودم رو نعل کردم پس سراکش و سیر شبانه مفعول ترکتوست سیر شبانه شب و روید حرکت در شب که گفتیم چرا حرکت میکردن از شدم که تلاست این دیگه مشخص شد که با قول خودمون چی میخواد بگه و این که گفته من قصبا از پر خودم رو نال کردم با طلا کنار از اینه که دیگه اینقدر دارم که نمیدونم چیکار بکنم. خب همه اینها میگه به نوع به واسطه عطای تو به بیت بعد رو ببینید میگه و تو نفسی فی ذرا ک محبتن و من وجدل احسان قیدا تقییدار میگه تو خیلی به من لطف کردی دیگه به ناماکم بالا گفت میگه و قید تو نفسی قید تو یعنی بستم قید یعنی بند یعنی نفس خودم رو پابند کردم قید تو خیل و نفسی مفادش نفسم رو پابند کردم فی زراک در کنف تو در پناه تو م. یعنی من خودم رو بستم به تو م. من دیگه بهقول خودمو کنه معامله نیستم من بند کنف تو هستم من خودمو آویزون تو کردم قید و نفسی فی زراک حالا یه موقع هست جالبه این محبتنش قشنگه محبتن یعنی حبن می میمیه مفعولان لهه مفعولان لهه اینا رو میگم که بتونید شعر رو با ترکیب محتوایی اون شیرینی شعر رو بفن حالا یه موقع یکی خودش رو به یکی میبنده از سر بقوله چاپوسی و از سر و کلک و اثر حالا اینکه یه چیزی ازش میتیقیم و از اینجور چیزا این میگه نه محبتا واقعا دوستت دارم درسته که تو به من چیزی میدی و من هم اینقدر دارم که دیگه اصلا چشم سیر شده به هیچی نگاه نمی ولی از سر دوستی خودم رو به تو بستم قید تو نفسی فی زراک زرا یعنی کنف پناه در پناه تو در کنف تو محبتا مفعولند بعد خودش پشتش یه چیزی میگه که ذرب المثلم استفاده شده میگه و من وجدل احسان رایدن تغید این کار قانون طبیعت قانون دنیاست و هر کسی که پیدا کنه احسان و نیکی رو هر کسی خوبی رو جایی پیدا بکنه به عنوان بند بند او لطف و احسان باشه بندی که او رو میبنده لطف و احسان باشه هرکی خوبی ببینه و این خوبی او رو بند کنه تقیده به بند راضی میشه تقیده یعنی داخل بند میشه هرکه پابند احسان و کرم بشه این قابندی رو قبول میکنه این احسان قبول میکنه مگر از ما از تو خوبی دیدیم به آویزون شدیم اونم از سر علاقه و هر کسی خوبی رو به عنوان قید و بند بهش ارائه کنن راحت میپذیره و مقید میشه و من وجدل احسان قیدن تقیده این و من دلیله یعنی زیرا هر کسی که خوبی و لطف و محبت رو به عنوان قید پیدا کند درست شد؟ به عنوان قید پیدا بکنه تید مقید میشه و من وجدل احسان قیدن قیدن تقییده <تصفح> یعنی تو با احسان و کرمت منو بند خودت کردی و منم این احسان و کرم رو دیدم علاقمند شدم از سر محبت بند تو رو پذیرفتی در بند تو واقع شدی در بند تو واقع شدی قشنگ بود خب چیز خاصی نداره تمام لغاتش هم گفته ما یه زروه داریم زروتون با زال مثل زال راواب تایگر زروتون که زروتون هم گفته میشه یعنی قله قله اون جمعش زرا و زراست یعنی قله ها اونو با این اشتباه نکنید گایوها زرا زرا جمع زروه زروه گفته میشه اون جمعه به معنای قلعه است. اما این زرال مفرده به معنای پناه کنق آ، به بسیار زیباست ازا سأل الانسانو ایامه لقنا و کنت علا بودن جعلنک موعدا جعلنک موعدا موعد یعنی محل وعده وعدگاه موعد یعنی وعدگاه این دوقته القنا یعنی سروت مشخصه ببینه چیز خشنه ازار یادتونه یک بار من توی بیت‌های قبل گفتم گفتم ازار مال جاییه که شرط با حق قول وقوره یعنی همچون چیزی اتفاق خواهد افتاد یعنی هرگاه سعلن انسانو الانسان یعنی فردی از انسانها، انسان ها مردمان اگر درخواست کند مردمان هنگامی که درخواست کند مردمان ایامهم مفعول اول سعد است القنا مفعول دوم چون سعد اگه دو مفعولی باشه به معنای درخواست یعنی دست دراز کردن سائل یعنی کسی که دست دراز میکنه چیزی میخواد اگه دو مفعولی باشه اما سائلا فلا تقهر خذیت درست شد دو مفعولی چی میشه میشه هرگاه انسان ایامه او ایام یعنی روزگار از روزگار خودش ثروتی طلب کنه خوب انسان از روزگار چیزی بخواد یعنی از مردم روزگار اقول خودمون روزگار مادر این هستیه میگه اگر هنگامی برسد که انسان از روزگار ثروتی درخواست کند دستی به روزگار دراز کند و کنت علا بعدن و کنت علا بعدنت و تو اونجا نباشی چون اگر باشی که نمیره سراغ روزگار ثروت بخور. از تو میگیره تو نباشی از همه مردم روزگار از روزگار انسانی درخواسته ثروت کند و کن کنته بعدن ولی تو اونجا نباشی تو دور باشی میگه هیچ کسی نمیتونه خواستشو بر بیاره همه اونها جعل نه این نون نخوره به ایام جعل نکه ما و ادا ایام و روزگار تو رو محل وعده فرار میده میگه برو به شفالد هیچ کسی از عهده احسان و غنا و ثروت جست و بر نمیاد اگر هنگامی انسان مجبور بشه از روزگار ثروت طلب کنه دست راز کنه و تو دور باشی و آنجا نباشی همه ی روزگار چه میکنند ونو محل وعده قرار میده یعنی اگه کسی از روزگار خلاص و طلب جاه و مال و ثروت و چیزی بکنه و تو اونجا نباشی و دور باشی همشون میگن برو پیش فلان درست شو روزگار تو رو وعدگاه خودش قرار میده خب این که مشخص بود خیلی چاله و این بیت آخر بیت آخر آه معمولا بیت اول قصیده و بیت آخر قصیده که بهش میگن حسن مقلع و حسن مقتق یعنی آخر خیلی مهمه این بیت آخرش دیگه شست رو برد همه چی رو به الگشن هی یعنی روزگارم نمیتونه جای تو رو پر کنه تازه اگه یک کسی مجبور شه از روزگار دست دراز کنه و چیزی به تو اونجا نباشی این تو اونجا نباشی رو به عنوان قید زده یعنی اگه تو باشی که تو رو ببینه نمیره سراغ روزگار یا سراغ خوده تو نباشی دست دراز کنه مقابل روزگار روزگار ازش کاری بر نمیاد همشون میگن وعدهگاه ما فلان برو پیش فلانیم او بسیار زیبا بود این قصیده و تماشایی حالا میریم سر قصیده بعدمون این قصیده بعد هم باز مد آی سیف الدوله است مده سیف الدوله است و آی متنبی سیف و دوله رو دوست داره و به خاطر این علاقش به سیف و دوله مدهایی که نسبت به سیف و دوله داره یه زیبایی خاص خودش داره زمن اینکه متنبی بهش میگن شاعر نفسی درسته داره مدح میکنه ولی اگه شما شعرهاشو نگاه کنید مقایستش میکنن تو مقایستهی خیلی چیزی نیست با سعدی سعی واقعا شاعر انسانشناس و روانشناس و جامعه شناسی است ولی این هم رجه از تجربه و رگههایی از شناخت انسان و روحیات انسان و جامعه انسانی در بیاتش وجود داره مثل الان بیت که خواهیم بود. اینی که الان میخوایم بخونیم؟ در متح سیف است و آی سیف در مرز روم یک قلعه بوده به اسم الحدس اسم اون قلعه چی بوده؟ الحدس با سی سراخته این قلعه رو ساخته بودند در مرز روم و در واقع مقابل رومیان یعنی مرز بین کشور اسلامی بوده با کشور روم با رومیانی که مسیحی بوده که اون دمتریوس و اینها در واقع در همین حدود جنگشون اتفاق افتاد که توی این قصیده این قلعه حدس بارها و بارها بارها و بارها دست به دست شده بوده یعنی مثلا رومی ها می آمدن اونو اشقال یا خرابش می این قلعه رو بعد از اشغال اینها می آمدن رومی ها رو از اونجا بیرون می دوباره قلعه بازسازی می شد. این اتفاق افتاده بوده چندین. ما تا آخر آقای سیف و دوله جوری رومیان رو سر جای خودشون میشونه که همین جنگ با دمیتریوس و اینها باشه که کشته های این رو از دیوار این قلعه ها کرده بوده و این قلعه رو یه اساسی هم کرده درست شد همین باعث شده که متنبی اینو شعر بکنی خودش هم تو این جنگ بوده همراه با سیف و دوله و از این جهت با قول خودمون انگاری ناظر گزارشگری بوده نسبت به این موضوع پس محتوای این تحصیل رو فهمیدید که در چه زاویه ای میخواد صحبت کنه اگر گوشتون رو به ما بدید و الله من چه که از ترکیب و مطلب و اینا میگیم اون زیبایی های این قصیده رو هم همراه تون خواهید داشت میگن وقتی جنسان چندین قصیده از یک مهوری تو این شکلها میخونه جوری که فقط ترجمه هم نباشه دیگه باید یه زایغهی پیدا کنه که بتونه اون شیرینی کلام رو درک کنه خب ببینه چه میگه یک علا قدر اهل لعزم تعتل عزائمون و تعطی علا قدر لکرامل مکارمو این چون بیت اول قصیده است هم مصره اولش قافیه داره علا ازائمو میم هم مصره دومش مکارم. ولی از اون به بعد شما نگاه میکنید دیگه قافیه در انتهای بیت این بیت اول رو معمولا میخوان قافیه رو بشناسونن زو قافیت اینش میکنن و در واقع تحمیل میکنن که من اینو میخوام میمیه بگم قافیش با میمه به میگن قصیدتون میمیتون قصیده است و بیتی که دوتا قافیه مثل این داشته باشه مثل اول مثل دوم بهش میگن بیت مسرق مسرق با ساد و این یعنی تزیگه نیشده چون قافیه زینت شعر دیگه این قافیه است که به تنگ شاعر رو به جفنگ میاره قافیه هنر شاعره درست شد؟ لذا این بیت مسرعه زینت شده و آراسته پس بیت مسرعه به چه نوع بیتی میگن؟ به بیتی که هم مثل اولش قافیه داره هم مثل دوباره این مانع نمیشه که وسط های قصیده مسرع نداشته باشیم ولی معمولا بیت اول رو به شکل بیت مسرع میارن که قافیه رو به مخاطب تحمیل کنن و بفهم ببینید این دوتا بیتی که الان میخونیم یک قاعده روانشناسانه رو داره که شما وقتی دقت کنید اینو میفهمید میگه علا قدر اهل العزم عزم یعنی اراده تصمیم به اندازه اهل تصمیم یعنی به اندازه تصمیم‌گیران تعتی العزائم عزائم جمع عظیم است یعنی اراده تصمیم میگه علا قدر متعلق به تعتی است مقدمام شده مفید حسره یعنی تعتی علعظائمو میآید آید اراده ها و همتها به اندازه اراده کنندگان و همت کنندگان یه نفر همت بالا داره اصلا بقول خودمون آدمیه که کوتحبین نیست این اراده هایی هم که میکنه که میگیره بزرگی تا نکه دماغشو نمی بینه. علا قدر اهل ازم تعتل از آرمون آیا اینطور نیست میگه اراده ده. اراده هر کسی بستگی به همت رو او داره از گوزه همون برون تر که در داره. و داره و تعتی علا قدر الکرام المکارمون مکارم جمع مکرومه هستش مکرومه یعنی کرم لطف میگه کرم ها و لطف ها درست شد میاد علا قدر کرام به اندازه کرام جمع کریمه کریمش اون عطا به اندازه عطا کننده شد و یه نفر میبینی که حاتم تاییست عطایش عطای, عطای حاتم تایی داره یکیم منم عطای منم موشنگست درست شد و کرمها مقیاسش بر قیاس کرم کنندگانش پس اراده وابسته به اراده کننده است کرم هم وابسته به کریم نشه خب قبول داریم اینو حالا میخواد نتیجه به ایتی و تعتی علا قدر کرامه علا قدر کرام متعلق به تعطیز. آل مکارم و است. و تعظمو از حالا نگاه کن. و تا از فی عین سعیر سعاروها مهر رو بزن به آل و مکارم بیدبوط. جمع سغیر سعیر کوچیک. میشه چی؟ آه، تا از سغاروها اراده ها و کرمهای های کوچیک اراده های کوچیک کرمهای های کوچیک تعظیم عظیم جلوه میکنه گنده دیده میشه فی عین صغیر در چشم آدمی که کوچیک سغیر آدم, آدم بی اورزه آدم بیکرم آ، این آدم اگر یه جایی بیاد از یه مثلاً فرز کن رو یه متری بپره، درست شد یا بیاد یه قرص نوم به یکی بده اوه هر کجا بشی نمیگه اصلا از, از جلو چشش نمیمینه من چه کردم چی بوده تعظم از فی عین سغیر یعنی از شخص سریر. از این جلوه میکنه در چشم انسان کوچک کوچکهای این اراده ها و کرم ها این کرم های کوچک و اراده های کوچک تو چشمه اون گنده جنوه میکنه فکر میکنه که شاخ فیلو شکسته فکر میکنه چه کرده و تسخ رو اما اون طرف و تسق عین العظیمه العظائم عزائم جمع عظیمه است یعنی بزرگ کار گنده شاهکار و تسق و کوچک جلوه میکنه در چشم انسان بزرگ در چشم انسان بزرگ کوچک جلوه میکنه العظائم کارهای خیلی خیلی گنده شاهکارها شاهکار کرده چه کاری کرده اما تو چشمش داری کسی کرد؟ چرا چون حمتش بالاتر از اونه. ارادش بالاتر از اونه روحش بزرگتر از این کار اگر صد نفر رو هم در جنگ از دم تیغ گذرانده میگه ما که کاری نکردیم چرا چون تو زهنش اینه که از این باید باشه اگر صد نفر رو سیر کرده و کرم کرده اصلا این اخیار کنید چیز کنید ما کاش میتونستیم هزار نفر بیاره. روح بالا تر از این داری و تسکرو فی این العظیمه ال ازادم درست خب شد صنعت تباق رو تو این عبارات میبینید دیگه تعظم و با تسکرو صویر با عظیم اینها اینا صنایه که صنعت تضاد که شما در این دارید چهار تا جمله فعلیه تعتل عزائم تعتی المكارم تعزم وصغارها تسخروا على عزائم این تا جمله و چیز قشنگی هم. نه یعنی هر که زد هیچ کسی نمیتونه بگه نه اینطور نیست حالا چرا اینها رو مقدمتن کرد؟ چرا این امر روانشناسانه رو به عنوان مقدم زکر چون میخواد بره تو مده سیفت دوله میگه رو میخواد بگه میگه سیفت دوله بابا حمتش اینقدر زیاده ارزش اینقدر بالاست ارادش هم اینقدر بالاست که اصلا قابل قیاس نیست از ما چیزی رو میخواد که ما نمیتونیم چرا تقصیر نداره چون خودش بزرگه نمیتونه کار کوچیک بکنه چون خودش بزرگه نمیتونه اراده کوچیک بکنه چون خودش خیلی کریمه نمیتونه کرم کوچیک بکنه اصلا نمیتونه هرچی هم میکنه کچیک میبینه داره این؟ از این قاعده دار استفاده گاهکن حالا این دوتا مقدمه شد برای یکف و صعیف و دولت الجیش هم بهو الجش یعنی جایشه الفلوض از مزافانه لایه یعنی به لشکر خودش یکلف و دو مفعولی تکلیف میکنه صیف و دوله به لشکر خود هم همت خودش بابا این همت توی تو آدم بزرگ تو رستم دستان هستی همت دینه من که نیستم من نمیتونم این هممت رو یه تکلیف میکنی فکر میکنه احناس خودشم یکلف و سیف و دولت الجیش همهو همهو رو میخوره به صیف و دولت همه خودش رو یعنی همت و عرضه خودش رو تکلیف میکنه به نشگر خودش. و قد اجزت انهو الجنوشال و حالی است و حالان که قد عجزت انهو انهو یعنی از این هم و حالان که آجز است از برآورده کردن این هم آجز است از برآورده کردن این هم از این هم کی است؟ از جیوش لشکرهای بگید کسی رو جیوش جمع میگه خودش یه لشکر داره مثلا یه لشکر فرض کنید که ده هزار نفری داره یه لشکر دیگر داره ده هزار نفری یه لشکر چیز نزاره از اینها یک چیزی رو درخواست میکنه و تکلیف میکنه که ده تا لشکر اونم لشکر مکانیزه و لشکر سیلی خیلی پا رکاب توش گیر میکنی چرا اینطوری میگه؟ میگه به دلیل اینکه هممت بالاست افق دیدش بالاست و قد اجزت انها الجیوش و فایله اجزت الخزارم صفت جیوش خزارم جمع خزارم. خزارم جمع خزرم درست شد؟ عبارت هست چیزی که خیلی زیاد و کثیره زیاد و کثیر و عظیم الکسیر و العظیم اوشه خزرم خزرم یعنی الکسیر العظیم زیاد و بزرگ لشگره زیاد و لشگر عظیم لشگرهای زیاد و عظیم آجزند از برآورده کردنی اون اینو تکلیف میکنه به این یک خودش چرا به دلیل اینکه افاق دیلش کارده با بزرگان خلاصه جدی. کار سخت میشه بیگه چون اونها همهت کارده و قدع اجزت حاله پس تکلیف میکنه سیف و دوله به لشکر خود همت و عرضه خودشو همت و عرضه خودشو از اونا میخواد در حالی که از این همت آجز است لشکرهای عظیم و کسی نمیتونه کار کنیم از جلوشو خضا خوب دیدیم که خیلی راحت تر داریم میریم جلو سخت نبود و یاتلو و یاتلو یعنی اندن ناس ما اندن نفسی و یاتلو بود به جای یک یعنی یاتلو بود سعی اندن ناس ما اندن نفسی و ما لا تدعیه الزراغمو میگه آدم شجاع رو تشبیه میکنن به شیر زرغام شیره زرغام شیر ژیان یامش میشه زراغم در ش میشه شیران شیرهای ژیان میگه یطلو با اندن ناس. طلب میکنه پیش مردم عادی پیش همه لشگریان و افراد عادی طلب میکنه چی رو ما آن چرا که اندن نفسی پیش خودشه از این مردم عادی و، نترسی و شجاعت و کرم و درایت و اینجور چیزایی رو میخواد که انده نفسی پیش خودشه مردم با خودش مقایسته میکنن. سراجون بزرگ روح بزرگ داره فکر باید همونی از خودشان و یطلو با انده ناس ما یه انده متعلق با یطلو بسی ما مفعوله یطلو ما انده نفسی دید. اونی که پیش خودش اون عرضه ای که خود خودش داره اون از لشگرش هم مخواه و زالکه و حالا که یه چنین چیزی مالا تدعیه از ذراقه و زالکه یعنی این شجاعتی که این داره از مردم طلب میکنه در حالی که این شجاعتی که او داره از مردم طلب میکنه چیزیه که لا تدعیه از ذراقه ما ادعای اون رو شیرهای جیانه منسوب به شجاعت هم نمی کند شیر هم بر نمیاد. شیرها هم همچین مدعی نیستند این و و حالی است و حالان که زالک این زالک یعنی ماهندن افسهی اون چیزی که پیش خودشه اون شجاعت چون خب به لشکر داره میگه شجاعت می از لشکر دیگه میگه از لشکر شجاعت از لشکر طلب میکنه چیزی رو که پیش خودشه دنبال میکنه پیش مردم اون چیزی رو که پیش خودش ده. یعنی شجاعتی که خودش در رو از مردم طلب میکنه در حالی که این شجاعت چیزیه که شیرهای عالم هم ادعای اون به بگو ندارن شجاعت رو تشبیح به شیر میکنن میگه حتی شیرهای عالم که مظهر شجاعت هم هستن همچین بگید؟ ادعایی ندارند. همچین ادعایی ندارن خب راحت بود زالکه ما زالکه مبتدا ما و این واو هم واقع خالی هست خب شعر رو هم فهمیدیم و یطلب و اندن ناس ما این ما یعنی چیزی که پیش خودشه معلومه که واقعی بیت قبلی منظور شجاعته آه یعنی پیش مردم جستجون میکنه آن چرا که پیش خودشه یعنی شجاعت که پیش خودشه در صورتی که این شجاعت زالکه نید یعنی میخورو به ما اندنفسهی در صورتی که این شجاعتی که پیش او هست چیزی که شیرها هم مدعی او بگید نیستن این شجاعت رو شما نزد شیران هم پیدا نخواهید وذالک ما لا تدعیه از درام یعنی دلش میخواد مردم مثل خودش شجاق باشن و حمله کنن و هلانو مثال در صورت که این چیزیه که این شجاعتی که اون میخواد و پیش خودشه شیرها هم که مظهر شجاعتن همچین چیزی را ندارن. حالا چه برسه به این بیچاره هایی که تو لشته؟ خب بیت بعد نگاه یوفت عتم و عمرن امرن سلاحهو. نصور ملا ملا هست فلا هم هست هر هم نقل شده هر دوشم به یه معنی است. ملا و فلا به معنی بیابان فلات جمعش میشه فلا ملا تام ملا تو دیوانش اتفاقا نصور الملاست تو رسول یه معنی داری احداث ها ببینید فدا آه فدا یعنی فدا کرد یعنی گفت جوهل تو فدا کرد فداد این فعل مزاره یعنی فدا میکنه اتم متیر، ات تیر اسم جمع لام هم داره یعنی پرندگان تمام ترین پرندگان عمرن تمیزه برا نسبت عدم از جهت عمر شد میگه اونی که از همه پرندگان عمر بیشتری میکنه درست عمر بالاتری داره عتم متیر هستش عمران، یفدی سلاحه فدا میکنه خودش رو به اصله این به اصله سیفت یعنی پرندگی که از همه پرندگان طول عمر بیشتری داره به شمشیر سیف و دوله میگه جوئل تو فداک من فدایی تو قربانت برم حالا و اتم رو براش عطف بیان میاره اتم و تیر کدومه نصور الملا یا نصور الفلا نصرهای بیابانها نصر های بیابان ها نصور جمع نصر این پرندگان شکاری بیابان که به تیز پروازی مشهورند و از همه پرندگان عمر بیشتری دارند یعنی بیشتر از همه سیفت دلار می اینها قربان صدره شمشیر سیفالدوله میشن نصور الفدا بعد بران نصور الفدا فدا بدم میاره میگه اهداسو ها ول دشا ام اهداس جمع حدث یعنی جوون اهداس جمع حدث یعنی جوون قشائم جمع قشعم یعنی پیر پیر احداث و قشائم یعنی احداث و ها و قشائم ها محلفلام عوض از مضافان یعنی جوانش و پیرش اونها هم برمیگرده به نصور میدونید که بدل بعض از کن نیاز به زمیری داره که برگرده به مابدلان اونها برمیگرده به نصور نصور هم گفتیم عطف بیانه برای عطم میگه کرکس خواهی آسمان که از همه بیشتر اهم میکنن یعنی بیشتر از همه این سیف و دوله رو دیدن اهم میکنن دیدن و چی کردن اینا قربون صدقه سلاح سیف و دوله میرن میگن ما به قربان توی شم جوانشون و پیرشون آه اهداس یعنی جوانشون نوجوانشون و پیرش اهداس و ها و قشایه پیر و جوان اینکه ما میگیم پیر و جوان دنبال فلانی را افتاده بودن یعنی همه دیگه آبا شون یعنی همه حالا چرا چرا این پرندگان قربون صدقه یه شمشیر سیفت دوله میرن چرا؟ به دلیل اینکه سیفت دوله اهل جنگ، اهل سرکوب دشمنانه میاد اونها رو سرکوب میکنه جنازه ها رو میریزه تو بیارون خوراکش برای اینا رو تهمیم به قول متنبی میگه یه لشکر سیفت دوله رو زمین میبره آه؟ برای جنگ یه لشکر هم تو آسمون دنبال این میاند این گرکس خب چرا؟ چون میدونن الان انقد اطمینان دارند، می‌دونن که الان سیب و دوله لشکر مقابل و همه را از دمه تیغ و حسابی برای اینها سورسات را تعمیم میکنه یفدی عتم متیر عمرن نمرن تمیزه برای نسبت عطف تمام ترین پرندگان از لحاظ عمر فدا می کند یعنی فدا می کند خودش رو سلاح هم. به سلاح سیفت شمشیر سیفت نیزه سیفت دوله خب اون اتم و تیر از جهت اوم کدومان نصور الفلا الفلا جمع فلات یعنی بیابان ها چرکس همه بیابون ها چرکس های همه بیابون ها سیفت دولر میشنسن گفت مصدقه پیر و جوانشون جوونشون و پیرشون اهداسوها و قشایم اهداسوها جوانشون قشایم پیرشون یعنی و قشایم این بدل از این دوتا بهمت شده از نصور و فلا. یعنی همهشون پیر و جوان خب این هم که قشنگ بود حالا نگاه کنید بیت بعد هی زیوایی خودشو بیشتر میکنه میگه و ما ذرها ها ها بزنید به نصور الفلا و ما زره ها خلق به غیر مخالبی به غیر مخال که اشتباه می کنیم به غیر مخالبی وقت خلقت اسيافه و القوام یعنی ما قوام مثل همان قشائم که بود قشائم ها الف از از مضافه یعنی این به خاطر قافیه زمین رو ورداشتر فلان بذاشته ولقوائم یعنی وقوائم درست شد جمع قائمه به معنای دسته نه منظور دسته سینه یا دسته مثلا فرض کنید رنگی یا دسته مثلا چاقو دسته شمشیر اصطلاحا به عربی میگن مقبض مقبض یعنی اونی که تو قبضه میگیری تو مشت میگیری دسته شمشیر مو. قبائمش جمع قاره خب این لغت رو دیمستی زره ها یعنی زره زد باون زره یه زره یعنی زره زد بلدی مخالب جمع مخلبه مخالب جمع مخلب یعنی چنگال ها این جک از ها،, ها یا شیر بلنگ چنگال دارن. اون چنگال رو مفردش میشه مخلب جمعش میشه مخالب میشه چنگال ها نه چنگالی که باش غذا میخوری یا چنگال حیوان می متوجه این باش. درست شو. این ماه مایه و ما ذره ها میتونه مایه استفهامیه باشه میتونه مایه نافیه باشه استفخام باشه استفخامه در معنای نفیه استفخامه در معنای نفیه که تأکیدش بیشتره لذا اگر استفهام بگیرید معنای بیت مبالغه آمیزتر میشه و بهتره قوارم که گفتیم به کی بزنیم به نسور صللا میگه و ما ذره چه ضرری میزنه به این کرکسها ها خلق آفریده شدنی به غیر مخالبن آفریده شدنی که به دنیا آمدنی که به غیر مخالب باشه چنگال نداشته. باشه درست شده نه نه میگه چه ضرری داره اصلا اینها چنگال نداشته باشه هیچ ضرری نمیکن. پس اگه بگیم ما به معنای استفهامه ذره ها خلقون ایوش ای این ها خلق به غیر مخالبی آفریده شدنی که بدون مخلب باشه چه ضرری داره هیچ زرری نداره چه ضرری میزنه به این نصور الفلا آفرینش بدون چنگال اینا چنگال نداشت در حالی که در حالی که این بابا است. در حالی که خلقت اسیاف و حوال و حالا که خدا آفریده است شمشیرهای سیف و, و یعنی نشگریانش رو و قبضه اون شمشیرها وقتی شمشیرها و قبضه و شم... قبضه های اون شمشیرها هست آفریده شده خدا آفریده حالا اگر خدا اینها رو بدون چنگال هم آفریده باشد بگید هیچ ضرری نمی کنه. چرا چون سیف دوله براشون بگید شکار میکنه روزیشونا چون اگر این پرنده چنگال نداشتش نمیتونه بگیره نمیتونه شکار کنه میگه حالا اینا اگر نداشته باشن هم ضرری نمی کنن. چرا چون شمشیر سیف و دوله و دسته شمشیر ذوالفقار دوله و یارانش هست. این ما اگه ما استفامه اگه ما این نافیه باشه که دیگه اصلا خیلی معنا مشخصه میشه ما ذره ها خلقون به غیر مخالبی یعنی چی یعنی ضرر نزده است به این اواب به این ترکزهای آسمان آفریده شدن بدون مخلب، اینکه الان اینها چنگال ندارن هیچ ضرری به این حاله میزنه در حالی که سیف و دوله و شمشیرها و, و هست اون موقع ما میشه مای نافیه زره ها میشه فعل و مفعول خلقون میشه فاعل خلقون به غیر مخالبی صفت خلق آفریده شدنی که بدونه چنگال. اینها آفریده بدون چنگال چنگال برای شکار نداشته باشند. زرری به اینها نمیزنه در حالی که آفریده شده است شمشیرهای دشگریان سیف و و بگید ببینید این یه مبحثی رو به خودمون داره که این قشنگ میشه اگر این رو بگیریم قشنگ میشه چون بالا گفتش که با قول خودمون چرکس های آسمان ها، چرکس های تمامی بیابان ها سیف و میشناسن و قربون صدقش میرن اینو گفت او بعد گفت این چرکس ها احداثشون و بگید قشائمشون گوهیم که هر ها جوون و پیرشون من گفتم که میتونیم بگیم که پیر و جوونشون یعنی همه شون صدقه سیف و دوله میرن چرا چون خوراک براشون تقید. اینجا توی این بیتی که الان پایین داره میگه به نظر میاد که قشائم و احداث منظورش بگید از احداث چرکسایی که هنوز جوجن قدرت شکار ندارند چنگال و درست ندارند نمیتونه و منظور از قشائم اونهایی هستند که پیرن و دیگه باز قدرت شکار بگید ندارند و اینها تو طبیعت تلف میشن این دوتا رو میگه بالا گفته که خیلی قرمون شمشیر سیف و دوله میرن چرا چون اینا نمیتونند زندگی کنن؟ میگه به جهنم فدای سرشون که اینها چنگال ندارن این جوجه ها و اون کرکس خواهی پیر و نمیتونن شکار کنن در حالی که شمشیر سیف و دوله و لشگریانش هستن این ها نداشته باشن هیچ مشکلی پیش باشو شهر قشنگ میشه میگه و ما ذره ها میگه دعاگوی آگوی سیف الدوله هستند اینها چرا چون سیف الدوله اینها رو از مرگ نجات میده اینها دیگه اگر توان شکار هم ندارند چنگو چنگالی ندارند در طبیعت نمیمیرند بلکه زنده میمانند چرا؟ چون سیف الدوله دوله هست و برای اونها شمشیرش و قبضه شمشیرش خوراک تأمین میکنه خب تموم شد. تا اینجا مدح سیف الدوله بود و مبحث رو بیان کرد ما زره ها خلقون به غیر مخالبی و بعد خلقت از یافه و القوائم اینجا دیگه مده اون سیف و دوله و اصل قصه رو شروع میکنه که اون حدث اون قلعه باشه که در مرز روم مورد اختلافه و محل نزاع نشکر صیف و دوله با رومیان بود میگه حل لحدث و با حل میگه حل لحدث و لهمراه یعنی لهمراه صفت حدثه چون حدث اسم قلعه است موننسه. حل لحدث و او تعرف و لونه ها و تعلما ع ساقیی این جمع غام است یعنی ابر باراندار قمائم جمع غماتون یعنی ابر بارانزا یعنی عبر ساقی یعنی عبر کسی که سیراب میکنه نمیدوند ساقیه این یعنی دو تا تثنیه است همراه هم یعنی سرخ همراه هم یعنی سرخ صفت الحدث این قلعه ای که قلعه ای که به اسم حدس بوده و ساخته بودن این رو این رنگش سرخ بوده یعنی اینو با آجرهایی که و خاکهایی که ساخته بودن ملاتی که ساخته بودن سرخ بوده رنگ این تاله تو جزیره هرمز شما قلعه ها و مطالبه زیاد میبینید سرخ سرخه چون خاک رنگش سرخه حالا منگنز داره همراه خودش و به این شکل شما این خاک رو سرخ میبینید میگه آیا این قلعه ای سرخ به اسم حدس تعرفه لونها ها رنگ خودشو میشناسه وانگه خودشو میشناسه خب بعد میگه و تعلم یعنی و هل و آیا تعلم یعنی دو مفعولی دیگه از افعال قلوب آیا میدونه ای ساغین القمائمو ای ساغین آیا مبتدا اضافه شده به ساغین القمائم خبرش این جمله ایوس ساغیین القمائمو محلا منصوبه جای دوتا مفعول تعلمست چون ایو ایو استفاقیه است دیگه رو لفظش عمل نمیکنه به این میگن تعلیق تو افعال قلوب نگاه کنی تو بحث افعال قلوب چون ایو صدارت داره دیگه نمی شده. تعلمو اونو به عنوان مفعول اول برداره القرمه مو مفعول دو فا. بلکه بگید ها مجبور این دو تا مبتدا خبر به شکل مبتدا خبر موندند این محلا منصوب جای دو تا مفعول تعلم و. از باب تعلیق از خصوصیت افعال قلبی و هل تعلم ای ساقیین ببینید این قلعه رو دو تا ابر سیراب کردند یکی عبر آسمان یکی هم سیف الدوله میگه این قلعه الان سرخه آیا رنگ خودشو رو این رنگش سرخه آیا ابر آسمان باریده بر او ابر بارانزای او ابر آسمان بوده یا سیفالدوله بوده سیفالدوله چه جوری باریده سیف الدوله لشکریان روم را که بر این قلعه مستولی بودند همه کشته و همه رو آویزان کرده به انسان. و خون اونها این قلعه رو سرخ کرد و تعلمو یعنی به حل تعلمو ایست ساقیه اینه القمائمه. اونها اومدن این قلعه رو گرفته بودند و اونجا بودن سیف و اومد همشون رو کشت و اونها رو از بالای قلعه همه رو آویزون کرد آه؟ آدم کریم و آدم به هم به عبدشون و میگه این عبر باریده عبر آسمان بر این خون باریده قرمزش کرده یا این عبر زمینی ما و سیف الدوله کدوم بوده خست. یه میگه حواس این قلعه به رنگ سرخ خودش هست و آیا میدونه کدام ابر او باریده است کدام ابر ساقی بر او بوده است یعنی ابر آسمان باریده او رو سرخ کرده آسمان بر او خون باریده یا این ابر زمینی آقای سیفوت داره فکر میکنم فهمید حالا تو بیت این شکلی که الان داریم میگیم کامل توضیحش میده میگه ها سقا یسقی که ساقی تو بیت قبل خوندیم یعنی آبیاری کرد دو مفعولیه براد میگه سقط خواه القمائمو القمام همون قمائمه درست شو؟ قمام قمامتون بوده دیگه تاشو که بندازی میشه جمع میشه اسم جمع. قمائم خود جمشه قمامتون جمعش میشه قمائم درست شو؟ تاشو که بندازی بازم میشه جم اما جم در معنا میشه اسم جم مثل بقراتون جم ببندیم بشه بقرات یه بارم تاشو بندازیم البقر میگه سقط ها القمام القمام یعنی اما القمائم یکی این حالت اسم جم داره اون حالت جم داره یعنی عبرها سقط ها ها به که سیراب کرده این حدث را القمام القر عبرهای بارانزا عبرهای سفید قر یعنی سفید عبرهای سفید آسمان او را سیراب کرده قبل نزول هیل قبل از اومدن سیف الدوله تا قبل از اینکه که بیاد باران میباریده برش. ابر آسمان برش میباریده فلم ما وقتی سیف اومد یه رفت تو سیف و این ابر من کیم عبر یعنی مبالغه رو ببین فلم ما دنا، پس زمانی که نزدیک شد دنا یدنو یعنی نزدیک شد چی سیف الدوله فلم ما دنا منها منها یعنی حدست پس موقعی که سیف الدوله به این قلعه نزدیک شد سقط خواه الجماعیم جموع سقط خواه الجماع جموع. آبیاری کردین قلعه رو این دفعه جمجمه ها جمجمه هیه رومیان الجماع جموع آج سقط خواه جواب نماز میگه تا قبل از این که سیف الدوله بیان ابر آسمان جرعت میکرد میبارید بعد کرمی داشت سیفت دوله که اومد اب دیگه بهش نشد گفتیه عبرتره این خیلی بالاتره سیفت دوله هم با جمجمه ها اونو آبدال ها خیصش کرد با خون جمجمه رومیان ولن ما دنا منها دنها سیفت دوله غوبه میکرد منها میکرد به حدست متعلق به دنهاست سقط ها الجما جما یعنی سقط ها درست شد دمن آبیاری کرد این حدث رو جمجما ها به خون با خون سیرا بشه پس قبل از این که این بوده دیگه سقط ها القما ملقر قبل نزوله ماان عبرهای آسمان این چون سوایزقی دو مفهولیه دیگه عبرهای آسمان سیراب میکردن این قلعه رو قبل از اومدن سیف و دوله با آب بارون بهش میبارید ما دنامن ها پس موقعی که سیف و دوله به این قلعه نازدیک شد سقط ها درست شد آبیاری کرد این قلعه رو الجماجم جمجمه ها دماآن با خون مشخص شد تا قبل سیف الدوله بیاد عمر خیستش میکرد سیف الدوله که نزدیک شد جمجمه ها اونو خیستش کرد اما با چی خیست کرد؟ این با خون اون با کامل معلوم شد سقط حل قمام القر قبل نزوره فلم ما ها سقط حل جماج ما به شما گفتیم که سیف و دوله این قلعه رو از دست رومیان دره و اونو بازسازی کرد خودش وایساد تا حسابین و بننایشو کردن و بازسازی کردند و اینقدر هم سیف و دوله شجاع بود برای اینکه وقت خلف نشه در همون زمانی که داشتش جنگ میکرد و لشگر و شکست میداد بازسازی قلعه هم شروع کرده بود یعنی یه طرف قلعه رو مثلا از دست دشمنان آزاد کرده بودن یه ده داشتن قلعه رو درستش میکردن و تعمیر میکردن اون طرف قلعه جنگ بود و داشتن دشمنان رو میکشتن تا اونور ور به خودمون جنگش تموم شد این ساختمانش تموم شده بود اون ساخت حالا میگه چی؟ بناها بناها ساخت این قلعه رو کی ساخت؟ سیف بنا ها بنا یبنی فائلش خو میخوره به سیف ودونه هام حدث بنا ها فعلا یعنی فعلا ها اینجا به خاطر اینکه شعر وزنش درست میشدت بعد میگفت بنا ها ها این قلعه رو ساخت و و بالا بردش چون قلعه رو بلند میکردن بر افراشت. پس ساخت قلعه را و بر آن را این و وا, وا وا حالی هست ولقنا قنا جمع فناته قنات مثل همون قما قما به بالا که گفتم تا میفته افته جمع بشه این هم همون مثل فلا که فلات بوده قنا یعنی نیزه ها میگه ساخت این قلعه رو و برافراشتین این قلعه رو در حالی که نیزه ها تقره میخورد به نیزه ها خب نیزه های اول نیزه های سیف و یارانشه تقره و میکوبید نیزه را اون نیزه دوم، دوباره لشکر های, دوبار های میگه می قلعه رو ساخت و برافراش در حالی که جنگ تنبتن و نیزه به نیزه بگید دائر بود و نیزه‌های های سیف و دوله و یاران نیزه های دشمنان را در هم میکوبید این واف باز وابه است یعنی این جمله باز حال عطف به جایی این جمله بلفن است. و حالان که نیزه‌ها ها نیزه ها رو و موجل منایا منایا جمع است یعنی مرگ و موج المنایا و موج دریاهای مرگ حولها در اطراف این قلعه متلاطم بود, بود انگار این قلعه در یک دریایی از مرگ واقع شده بود موج این در اطراف قلعه بگید میچرخید در, در دریای خون قوتور بود و موج المنایا متلاتمون موج منایا متدام متلاتمون خبره حوله ها متعلق و موجه موجه به متلات موج مرگ موج دریاهای مرگ به تلاطم در آمده بود در اطراف این قلعه و نیزه ها بر نیزه ها کوبیده میشد. در یک چنین حالتی بناها این قلعه رو ساخت فاعلا بعد هم بالا بود برافراشت قلعه رو ساخت و برافراشت در یک چنین شرای بناها فاعلا ولقنا تقرأو تقرؤ لقنا تقرؤی ضمیر هی توشه میخوره به حلقنا چون لقنا در معنای جمع دیگه به معنای نیزه ها تاوفت داده جمع شد طرق قنا و موج منایا منایا جمع منیاس یعنی مرگ آه انگار مرگ یک دریاست موج این دریاهای مرگ موج دریای مرگ متلاطم بود در اطراف این قصر در یک چنین سیف و سیفالدوله ساخت این رو و بالا خیلی زیبا داره بعد حالا نگاه کنید بیت بعد رو زیباست و کانبه بها مثل الجنون فعصفه من جس از القتلا علیه ها تماعی اگر یه ذره دقت کنید لغت ها رو بگم این شعر رو مختبایی قشنگ میفهمیده شمیده خیلی قشنگ به ها یعنی این قلعه این قلعه اون زمی رو بخوایی با حدس جنونم یعنی دیوانگی مثل جنون یعنی مثل دیوانگی یعنی مرضی مثل دیوانگی دیوانه شدن آدم دیوانه میشه می لرزه تکون چون می‌خوره مثل کسی که قش میکنه خب میگه و کان به ها مثل الجنون و بود به جان این قلعه در وجود این قلعه مرضی مثل جنون مرضی مثل دیوانگی قدیم کسانی که حالا قش میکردند یا مغزشون تکم مخورد به قول خودمی الان ما میدونیم چه اتفاق میاد اتفاقات شیمیایی اتفاقات شدن رگ مشکلات مغزی اینها باعث میشه که خوب طرف اینطوری میشه دیگه قش میکنه علم اینا رو درمان نکنه قدیم خب نمیدونستن این رو معتقد بودن که اینها جن درشون حلول میکنه و اینها به لرزه افتادنشون بدین خاطره و مسترب بودنشون بدین خاطر خاطره بعد می آمدن چی قام بکنن این بود که تمیمه تمیمه جمعش تماعیم یک دعاهایی می نشانی این رو توی یه پارچه کچی که می گذاشتن میدوختن و بعد اویزیون می‌کردم بهش گوتن این. این از چشم زخم و از نزدیک شدن اجنده به او و قش کردن نجات پیدا میگه می این قلعه در طلاتوم بود مثل یک دیوانه ای که مرضی مثل دیوانگی به جانش افتاده بود و کانبه ها مثل الجنون این بهها خبر مقدم کننده مثل الجنون اسمش بود مرضی مثل جنون بر تن این قلعه افتاده بود فعص بهت پس صبح کرد این صبح دامنه است پس صبح کرد وارد که صبح شد حالش خوب شد چطوری خوب شد فاصل بهت این قلعه و من جس از دل قتلا ها تمام این واباو حالی است فعص صبح کرد که حالش خوب شد ا پس گردید من از القتلا وارد صبح شد در حالی که از جسس جمع جسست جسه یعنی جسد و حالانکه از جسدهای القتلا قتلا جمع قتیله یعنی کشته شده و حالانکه از جسها و جسدهای کشته شدگان کشته‌شدگان رومی علیها تمائم برای او تمیمه هایی بود این و دوله اینا رو آویزون کرده بود کشته های اونها رو به قلعه اینا رو تشبیه کرده به تمیمه که آویزون میکردن به اینایی که مشکل داشتن که فرمهره محرب و نمیدونم فرض بفرموی دعاهای کزایی و وضعیت نوشته هایی که توی کاغذو یا توی چرمی نوشته شده آویزون که اینا رو به اونها آویزون میکردن به ای آدم ها. که چشم زخت به دور باشن قش نکنه و نلرزن میگه این قلعه انگار بگید در تاب و لرز و وحشتی مثل دیوانگی و قش بود پس صبح کرد ظاهر شد در حالی که از کشتهی، کشته های نشگر روم سیف و دوله بر این قلعه تمام گذاشته بود دعاهایی رو آمیخته بود یعنی این کشته شده ها مثل دعاهایی بودند که بر این قلعه آویزون کردن این ها آویزون کردن قلعه آروم شده بود این قلعه داشتش بگه مثل یک دیوانه به خود می در تب بود سیف و دوله این کشته ها رو بر او آویخت این کشته ها مثل تمیما ها بر او آویزان شدن و در واقع این قلعه به آرامش رسید ساکت شد اما پس این قلعه و منجس اصل قتل و علیها این وا است منجس اصل قتل و علیها این دو تا جار مذم متعلق به عامل مقدم خبر مقدم تمائم مفتدا مؤخر و حالان که از جسد های کشته شده های روم بر این قلعه تمیده ها و دعاهایی آویخته شده بود سیف الدوله اینو درمانش کرد این قلعه مضطرب را که مثل جنون داشت و در ازتراب بود سیف الدوله این تمیده رو بر او آویخت و او را, او را به آرامش رسال او رو به آرامش رسال خب حالا دیگه ما بقیه انشالله برای جلسه بعدمون و میبینید که خیلی روانتر با استعداد شعری بالاتر بریم این شعرها رو میخونیم و شما هم راحت میفرمیم انشالله که استفاده وافری از اینها بکنید و مخصوصا زوغ شعری شما حرکت کنه عبارات رو همراه با گرامل و بقای خوب بفهمید تا هفته آینده انشالله این ساعت همهتون سلامت باشید آرزوی توفیق برای همه و سلام علیکم و رحمت الله و